اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء شقت به نام خداوند بخشنده بخشایشگر در آن هنگام که آسمان شکافته شود و آذینت لربیا و حقت. و تسلیم فرمان پروردگارش شود. و سزاوار است چون این باشد. و ایند الأرض مدت. و در آن هنگام که زمین گسترده شود. و القت ما فيها و و آنچه در درون دارد بیرون افکند و خالی شود. و آذینت لربیا و حقت. و تسلیم فرمان پروردگارش گردد و شایسته است که چنین باشد یا ای الانسان اینکا کادح الى ربکا کدحن فملاقی ای انسان تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد فَأَمَّا مَنْ اَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا به زودی حساب آسانی برای او می شود وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ اَمَّارِ سرورا. و خوشحال به اهل و خانواده اش باز می کردند و اما من و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود فسوف یدعو ثبورا به زودی فریاد می زند وای بر من که هلاک شدم و در شعله های سوزان آتش می سوزد اهله مسرورا چرا که او در میان خانواده پیوسته از کفر و گناه خود مسرور بود حور. او گمان می هرگز بازگشت نمی کند بلا این ربهو کان به بصیرا آری پروردگارش نسبت به او بینا بود فلا اقسم بالشفق سوگند بالشفق واللین و ما وسق و سوگند به شب و آنچه را جمع آبری می کند و, و سوگند به ماه آن راه که بدر کامل می شود لترکبون که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید تا به کمال برسید لا پس چرا آنان ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ قرآن لا و هنگامی که قرآن برانها خانده می شود سجده نمی کنند بلکه کافران پیوست آیات الهی را انکار می کنند. و الله اعلم بما يوعون. و خداوند آنچه را در دل پنهان می دارند به خوبی می دارد فبشرهم بعذاب الیم پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده اِلَّا الذين آمنوا و وَعَمِلُوا الصالحات لهم أَجْرٌ غَيْرُ ممنون. مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند که برای آنان پاداشی است قطع نشودنی